تولدتت مبارک باشه. تولدت مبارک. انشالله که سالیان سال بدرخشی. نه ساله شدیم با هم و برای هم. تولدت مبارک عزیز. 9 سال پر از و موفقیت مبارکت باشه تولد نه سالگیمون مبارک بشه. تبریک به مناسبت نه سالگی شرکت نوین الماس. و موفقیت امروز رهبری شماست. الماس امروز 9 شد. مبارک باشه. 90 سالگیش. 9 سال گذشت ولی موفقیت هنوز ادامه داره. نه سال بالندگی و موفقیت این تازه شروع کاره نه سال قصه ماندگار سلام آقای علی خانی نه سالگی شرکت و تبریک میگم خوشحالم که توی این مسیر همراهتون تونست نه سالگی شرکت مبارکمون باشه ممنون بابت همه ی حمایت های خوبتون نه سال گذشت تولد نوینه الماس مبارک 9 سال پر افتخار. امروز سالگرد تولد خونه دوم نه با امید روزهای درخشانتر کناره هم نوین الماس 9 ساله شد روشن تر از همیشه نوین الماس تو خونه دوم منی تولدت مبارک سال ساختن و ماندن به زیبایی شیشه و استحکام الماس مبارک تبریک به مناسبت 9 سال موفقیت نوبین الماس عزیزم تولدت مبارک شاد و پیشرفت های بیشتر 9 سال از یه شروع شیرین گذشت بهترین اتفاقا رو تجربه کنید من خیلی خوشحالم که پنج سال از این 9 سال کنار شما بودم 9 سال پر از موفقیت تولدت مبارک 9 سال تلاش شگفت انگیز نوب سالگی نوبین الماس مبارک به امید موفقیت های بیشتر نوین الماس و تبریک میگم از رهبری شما کمال تشکر رو دارم. نهین سال گرد تسییس شرکت مبارک نه سال تلاش و افتخار تبریک نه سال پیش داستانی شروع شد که هنوز زیبا ادامه داره تولد مبارک نوبینما. سلام آقای حالی روزتون بخیر. امیدوارم صد سالگی نوین الموس رو جشن بگیریم. ممنونم از شما بابت همه حمایتایی که از من کردین و همیشه با صبر و حوصله جواب پایمای من رو میدین. حتی وقتهایی که سرتون خیلی شلوغه. شما نوین الموس برام با ارزشی و خیلی خوشحالم که به من اعتماد کردی.